بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه wa بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا مولانا يا صاحب الزمان هذا يوم الجمعه وهو يومك المتقوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك و قتل الكافرینه به سیفک و انه یا مولای فیه ضیفک و جاروک و انت یا مولای من اولاد الكرام و معمورون به زیافت والاجاره فعظفنی و عجرنی صلاوات الله علیک و علا احل بیت کت تاهرین اولین که ما به این مکان آمدیم و انشالله اگر خدای متعال عمری بده و حیاتی باشه تا فروردین رو در همین محل ما دو هفته یه بار به صورت مستمر خواهیم بود این بی هم که ملاحظه می شود فقط به خاطر همینه که تغییر مکان ما دادیم و حتی دوستان قرآن ما و دعا خانه ما هم نیامدند ولی به هر ارحال انشالله امتداد پیدا خواهد که هر دو هفته یه بار بعد از نماز مقربه شا در این مکان انشالله دوستارانه اهل بیت رو ملاقات خواهیم کرد بلکه استقبال هم میکنیم ای کسانی که آرا و افکار دیگری دارند تیریبون آزاد میکروفون آزاد هر کس هرچی میخواد بگه میتونه اینجا اونوان بکنه شروع بحث ما با این چند تا است که الان من پیشم گذاشتم این چند تا کتاب تقریبا مضمونن یک مطلب هست توش. بلو حالا افرادش مختلفن اما محتوا و مضمون یکی بیشتر نیست این کتاب‌ها شرح حالات افرادی است که اینا مسلمان شدند و عمدتاً از مسیحیت به اسلام برگشتند این کتابی که رسول فرمایید چرا مسلمان شدم این قسمی کتابه و این شرحال حال و نفر تقریبا از افرادی که به اسلام گرویدن زک شده درش البته همشون مسیحی نیستن از ملیت های مختلف و از مذاقب گوناگون هستند ولی خب مسیحیتوشون اکثریت داره این کتاب جمع آوری شده است البته کتاب دیگری به نام چرا و چگون مسلمان شدنده ده نفر ها عمدتا مسیحی بودند که در برخورد و در نشست با یک دانشمند و عالم اسلامی اینها به شرف اسلام و شرف تشییو البته مشرف شدند و این کتاب دیگر که تولدی نو باشد اسم کتابم روشنه سفر من از مسیحیت به اسلامی نه این آدمی شخصی اراقی نام علی شیخ یعنی این نامی که بعد از مسلمان شدن برای خودش انتخاب کرده اینا رو چرا مختصر میخوام بکنم البته فراوان کتاب دارم تو این ارتباط افراد بسیار زیادی که از ادیان دیگر بعد از مطالعه و بررسی تحقیق آمدن و این مقدس اسلام رو قبولش کردند و از اینجا یک خیلی راحت میتونیم دریابیم اونایی که از اسلام رفتن قطعا اسلام نمیدانستند که اگر میدونستند نمی رفتند چون اینا همشون همچین اعترافی میکنند که ما عمده اطلاعاتمون در مورد اسلام همون هایی بوده که به ما القا کردند حالا میخونم براتون عین عباراتشون رو القاات هم یا از طریق خانواده بوده یا از طریق کلیسا و کشیش ها بوده و اینها به ما اسلام و جور دیگری معرفی کرده بودند تو این از تو اساس ما رفتیم مسیر دیگری و انتخاب مسیر دیگر کردیم وقتی با حقایق نورانی این آین آشنا شدیم و مخصوصاً با کتابی که نامش قرآنه نوع این افرادی که مسلمان شدن که حالا هر چه الان براتون میخونم داستان هاشون رو اینها علت و انگیزه مسلمان شدن خودشون رو آشنایی با قرآن کریم و این کتاب عظیم خدا بیان کردن و معرفی کردن از این نفر اول که اینجا عکس اومده قسیوس کلیه قسیوس کلیه مکستن بوده ایک بکسور به اسطلاح بود در سنگی وز مدت ها, ها در دنیا قهربان اول بود و در بکس سنگی وز دنیا حرف اول رو اون می زدش. و این علت و انگیزه مسلمان شدن خودش رو بیان می تو همین مجموعه که ارسیدم برای چرا مسلمان شدم و از جمله از جمله حرفایی که میزنی اینه که من قبل از اینکه مسلمان بشبم در منجلاب مسیحیت فرو رفته بودم و همه کار می کردم همه کار می کردم قراشم ذکر میکنه از اعمال منافی افت از مشروب خاری و از هر نوع کار دگری وقتی با این آین مقدس برخورد کردم و آشنا شدم تکون خوردم و دانستم مذبون حرفاش اینه که خدا ما را برای خاطر این مسئله خلق نکرده که بیام چند سبای تو این دنیا زندگانی کنیم و دنبال مشتعیات نفسانی بریم و آنچه دلمون بخواد خلاصه برآورده کنیم و بعدم بیمیریم برای این نیست خداهای مطار در خلقت ما هدف دیگری رو تحقیب میکرده و من این هدف رو در اسلام یافتم و عنوانشم میکنه که بعد از تمام کاراب دستکشیدم و میرم هم بود مثلا آمریکا توی ادام می جنگید این هم سرباز بود گفت سربازی نمیرم. و برای خاطر اینکه اسلام این نوعجنگ ها رو حروم کرده و من مطی اسلام هستم و همین علتم از قهرمانی بکس دنیا انداختنش در خود آمریکا. افراد مختلف تو این کتاب نام بردار رو یکیشیم بود. یکی دیگرش یه است به نام خانم بریژیتنی، که این انگلیسی البته. این عباراتی اونوار میکنه که من اینم براتون میخونم. آره، اسلام آوردم. در حالی که بیشتر از سه ماه، از ابتدای تحقیقاتم نسبت به این آین انسانی نمیگذشت. همه سه ماه من. یادم سرگردان، یک مسیه سرگردان که مسیحت به هیچ وجه من رازی نمیکرد. ما وقت گذاشتم در آین مقدس اسلام تحقیق و تعمق و بررسی کردم و نتیجه این شد که مسلمون شدم طبیعی است در این مدت کوتاه من نمی توانستم جز یک سلسل کلیات و مطالب اجتماعی از اسلام اجمالی از اسلام بدانم تا اینکه جزئیات و تفسیلات مسائل را با خواهران مسلمان خود تر کردم و با بررسی ها و بحث های دامندار با آنها آشنایی پیدا کردم نظر اسلام درباره جهان و موجودات همه جانب بودن قوانین دارا بودن یک نظام اجتماعی صحیح بر اساس احتیاجات توده ها و وضع قوانین حکومتی و بین المللی برای تشکیل دولت و رسیدگی به وضع تمام ملتهای روی زمین از سری مطالبی است که انسان را به حقیقت این آین مقدس آشنا می کند و همچنین ایجاد فرهنگ و صنعت و کار بر پایه ایمان به خدا و فضائل انسانی و تعادل بین جهات مادی و معنوی بدون هیچ گونه افراط و تفرید از سطحها نکات برجسته‌ای است که در اسلام جلب توجه می‌کند و البته محور این حرفا خود قرآن کریمه یه آقای به نام آقای توماس از آمریکاست باز این مدده عنوان کرده پرستش خدای واحد یه داستان خیلی زیبا نقل میکنه میگه من تو آمریکا زندگی میکنم و میکردم خب دار آمریکا تبعیز نژادی الان یه خود خفیف شده ولی سابقاً بسیار شدید بود دار حدی که سیاه پوستان اصلا آدم حسابشون نمیکردن او میگه من در یک روز در مزرهی داشتم رد میشدم صده های به گوشم خورد صده های مقتعی کنشخاف شدم که این صده ها چی از کیه رفتم جلو یعنی کسی دست روشی تو گوشش این صدا مال اونه حرفاشم باشم معناشو نمی که داری چی میگه نگاه کردم بعد از مدت یعنی آده سری آدم جمع شدن جمع شدن با هم دیگه و شروع کردن یک سری کارهایی کردن یه نفرم جلو بایی اون کارایی که اون طرف به جلویی میکرد بقیه تعقیبش میکردن او خم میشدن به زمین میفتادن من معنی این حرفا رو اصلا نمیفهم که چی این کارا دارن یا میکنن ولی یه چیز برم خیلی جالب بود و آن چیز این بود که من بعد از خاتم این عملیات و این کارایی که اینا میکردن سراغ اون آقایی که جلو بایست دو رفتم پرسیدم شما چیکار کار میکردیم؟ گفتش ما داشتی گفتم نماز یعنی چی؟ گفت نماز یک عبادت اسلامی بلکه رکن عبادت اسلامی. گفتم من از نماز شما هیچ چاریم نشد یه چیز فهمیدم فقط که این آینی که شما معتقد بهش هستین و در این دنبالش بیرین اومده به صورت عملی در مملکتی که این تبعیض نژادی بیداد میکنه که حتی در برخی جاها سیار از سگم کمتر میدونن در این مملکت آمده بین سیا و سفید این تصاویر رو برقرار کرده که صف‌های جماعت شما سیاه با قره سفید وایساده من از اسلام همین رو فهمیدم که این آیه قرآن البته یا ایها الناس انا خلقناکم من و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمکم عند الله اتقاكم فعزیرت بر هم دیگه نداریت به خاطر رنگتون به خاطر پولتون از حرفا کدومه همه امتون تمام انسانها رو خدا از مردی و زنی خلق کرده اون مرد آدم است و اون زن هم حواست اگر شما رو شعب شعب کردیم قبیله قبیله کردیم فقط به خاطر این که همدیگر رو بشنسین ملاو که برتری شما در نزد خدای متعال تقوای شماست خدای ترسی شماست من این از اسلام دیدم فهمیدم با این آین تونسته پیاده کنه مسئله مساوات را بین سیاه و سفیدی که ما تو آمریکا شدیدن با او دست به گریبان هستیم شخص دیگری است به نام جی ای اس پلانت این اسمش آلا انگلیسیه و عضو کلیسایی انگلیکان انگلیسان هم بوده عضوش بوده عضو نسبیش بوده ببینید چی میگه این آدم من میگه معتقد به خدا بودم خدایی که نمیتوان او رو دیدش البته اما در کلیسا به ما این تعلیم رو میکردن این فرضیه رو مبدی بر این که مسیح علیه السلام پسر خداست و این نمیتونه تا میهار با قبول کنم و هرچه درباره اغنوم سوم یعنی روح القدس فکر بیکردم اندیشم به جایی نمیرسید همینطور هم هست مسئله تستیز در مسیحیت اصلا قابل بیان نیست اوه کتابا نوشتن تا دلتون بخواد که این مسئله رمزالود رازگونه رو را برای قریه جوری برای مردم بازش بکنن چطور میشه خدا سه قسمت داشته باشه در اینی که سه قسمت داره خدای واحده در اینی که خدای واحده سه قسمتی باشه این نمیشه آنچه من رو به طرف اسلام کشید بحث توحید اسلامی بود که خدا یکتاست خدا یگانه است از رای گردن به شما نزدیکتره از همه کس به شما مهربانتره در تصور نمی گنجه در طبخم نمیاد در مخیله شما جانه می گیره چون من هرچه هستم محدودم من هرچه هستم محاتم او محدود نیست او محیط بر همه هستیست بنابراین نمی توان در فکر و اندیش خدا را مجسم کرد چرا رزد به این که بگیم بچه دارم شده از شخصی به نام حضرت مریم سلام الله علیه این مطلب رو درف این قضیه کشوندش باز اینجا چگونه و چرا اسلام را پذیرفتم این آدم که عنوان میکنه که نامشم براتون بخونم اینن استراید سمارت بالا امریکاست چرا من پذیرفتم اسلام رو میگه آن چه باید شد من قبول کنم اسلام رو دادن یک حدیه از طرفی که دوستان همکلاسی به من بودش اون هدیه نامش قرآن بود و من این حدیه رو گرفتم در یک جلد شرمی پوشوندمش و هرگاه فرصتی می کردم در باره این کتاب که می کندم اندیشه می کردم که من مسیحی بودم البته ولی راه اندیشه کردن رو از این کتاب یاد گرفتم و باقعشم همینطوره و رتب قرآن کریم داره هشدار می ده افلا تزکرون افلا تاقلون افلای اقلون افلای تدبرون القرآن اندیشه کنید تعمل کنید تفکر کنید بیستید سریع قبول نکنید تحقیق کنید بررسی کنید اینو من قرآن یاد گرفتم و بعد فهمیدم که این آین آینیست که روح انسان رو میتونه بهش آرامش بده مسیحی ها میگن این حرفوی داره میزنه مسیحیت میگوید که نسبت به هم مانند برادر باشید و دلسوز و شفیق ولی با مقایسه با رفتار مسلمانان ایرینویز که یک ایالت از ایالت امریکاست که این تو اونجا زندگی می کرده و اعمال ایشان و دلسوزی که نسبت به یکدیگر دیگر داشتن این جمله بسیار توخالی به نظر می رسید یعنی حرف مزیدیت کسی که حاضر می شد در یک هوای طوفانی دیگری را به منزل درساند یک فرد مسلمان بود کسی که برای دوست مسلمانش اعانه جمع میکند تا او بتواند آخرین سال دکترای خود را به پایان برساند تنها میتواند یک مسلمان باشد. آری هنگامی که یکی از مسلمانان تمام اموال و هستی خیش را از دست داد و از پای افتاد تنها 18 مسلمان او را کمک کردند تا دوباره به پا خیزد. من مداوماً در مجامع مسلمانان ایلینویز شرکت می از دوستان مسلمانم و از پاسخهایی که دریاف داشته بودم فهمیدم که خدا یکیست و فرزندی ندارد و این حقیقتی است که در قرآن از آن مکرر یاد شده است اینم میگه علت اسلام من هم رفتار مسلمان ها بود و هم خود قرآن مقدس با شخص دیگری است به نام پریسمی مال استرالیا سیناتم اینم مسیحیه چه عواملی سبب کردید که من مسلمان شدم من در پاره ای از اختلافات ظاهر و باطن تعلیمات مسیحیت سوال میکردم ولی بزرگتران یعنی کشیش ها یعنی بزرگان کلیسا ابرو در هم میکشیدند و میگفتند که تنها وظیفه من قبول کردن است بدون سوال حالاشم هم همینطوره بر این کلیسا بگه این سوال دارم من تا صف وایسین جوابه آبکی رو قبول نکنین وایسین با طرف صفر مناظره کنید میگه من جواب ندارم بدم حرف آخر مسیحت همینه باید بیای ایمان بیاری تا اینکه باید مدب روشن بشه تو همه امورشون همینه خب این میگه من از اینم هم سوال میکردم این رویه دائمی این هاست سوال میکردم وقتی جواب نمیتونستن بدن ابروها رو در هم میکشیدند که اصلا تو سوال نباید بکنی سوال کردن حق منه این آیین مقدس ما و قرآن مقدسه به من داره شریعا فرمان میده میخوای راه خدا رو را انتخاب بکنی راه سعی میخوای انتخاب بکنی بعد تحقیق و بررسی بکنی همینجوری خدای گوهر به نام عقل به تو داده برای چی اصلا بهت داده برای راهیابیه برای महک زدن اصلا این گوهر نورانی الهی چرا به حق نداشته باشم حرف بزنم چرا نه با تحقیق بکنم مسیحیت اینه البته نه اینه یهودیات شما اینه نه و اینجوری زردوش شما مینه توره یعنی آیینی که فعلا دارن دعوی ما میدن عنوان زردوش هر چیز دیگری یه آیینه میگه من قدرت دارم قدرت دارم که پاسخ سوالات بدهم قدرت دارم که هر کس هر مبدل در مورد من تحقیق به تحقیق بکنه راجب عظمت این کتاب او من کتاب یاد رو براتون بیارم اینجا شاید در جلسه بعد بیارم این کتاب مال انگلستان هست اسم زبان انگلیسی هم است خیلی سالم پیش نوشته شده طب خود لندن هم استش یا آقای به نام لرد هدلی اسمش هم است میارم بهتون ببینین کتاب رو عین کتاب مال لندن است حالا صرفش این مسلمان شده یه مقایسه کنه بین تورات و انجیل و قرآن چریم ببینید او چی میگه که در قلب انگلستان بوده کتاب که ما ترجمه نکردیم که این کتاب اصلیه کسی ما حدیه داده از همونجا. منظورم این است یک کتابی که من میگه تحقیق بکن نه تنها اجازه تحقیق داری بلکه باید تحقیق بکنی حق تو از این کار انجام بدی در قرآن مقدس ما آیات فراوان داریم برخلاف آن چه در مسیحیت فعلی هست که حضرت عیسی نفرت دار از این مسیحیتی که دارن تحویل مردم دنیا میده و کفگیرام تا دیگ خورده حرفی هم برای گفتن ندارن نزا خو خیلی کارا خدمتون بدن عرض خواهم کرد انجام دارن میدنش دیگه قرآن به من میگه تو بشر عبادلدین یا ستمون القول فا یا تبون احسن به بندگان من بشارت بده بندگانی که تمام حرفا رو میشنوند برید بشنوید قرآن به شما اجازه اینجور میده برید هر حرفی در دومهات بشنوید اما در مقام طبعیت و قبول و پذیرش او عقل پسندترین حرفها رو قبولش بکنید خدا بهتون این داده این گوهر رو بهتون خدای متعال داده است رو این جهت این میگه من هم داستان داشتم متاسفانه سوال میکده اما سوالات من جواب داده نمیشد تا اینکه که رسیدم به یک آین به نام اسلام خدای متار در مسیر من این آین رو قرار داد و این آین دیدم دلائل منطقی توضیح اقلانی با این آین همراه است و به این تردیف پس از سالیان متمادی شک و اشتناب به پاسخای مطلوب و عقل پسند رسیدم و پاسخای خود رو دریافت کردم از این نموناتون کتاب فتفا رو بونه بخواید خیلی به طول میانچامد و اما این کتاب دکر یک دانشمند اسلامی در عراق رو با مسیحا بسیار بسیار, بسیار برخورد داشته البته لحن صحبت او لحن گفتگوی او برای کسانی که دنبال حق دارن میگردن میخوان حق رو بیابند با حق نمیخوان اناد بکنن مجادله نمیخوان کشیش ها اینجور نیستن برنامه ای دارن که بعد دنبال اون را برن چون زندگیشون دو همون را است. افرادی که به دام میفتنین بندگان خدا این افراد درشون خصیه تحقیه هم بکنن و خدای متعال هم تسبیب اسباب کرده یعنی که از نامهای خدایی ها مسبب برد اسباب دیگه تسبیب اسباب کرده در مسیرشون یه فرد دانشمنده منصف و خوش اخلاق را قرار داده ولی بایشون صحبت های فراوان داشتند یک زنه مسیح هالمانی ببینید راجع به این اسلام به اینها چی تعلیم میکنند چون اون دانشمند ایشون سوال میکنه در مورد اسلام شغل تحقیق کردید میگید چی چون به ما اسلامو اینجوری معرفی کرده بودم من از همان ابتدای کودکی در خانه و در مدرسه و در هر اجتماعی شنیدم که اسلام دشمن مسیحیت است و محمد دشمن مسیح هست و مسلمین دشمنات مسیحان میباشنی اینجوری بهش منالغامی کردن کسی یه مختصر سواد دشته باشه با قرآن کریم ارتباط پیدا بکنه در میابد که در این کتاب چقدر رسول گرامی اسلام از حضرت عیسیٰ مسیح تجلیل میکنه تعظیم و بزرگ داشتی که قرآن مقدس در باری حضرت عیسیٰ مسیح علیه السلام و مریم عزرا داره کجا انجیل حرفا اصلا داره اینقدر عظمت برای این دو نفر قائل قرانی جریم کجا پیغمبر اسلام دشمن ازیه برای این تبلیغات هست و این تبلیغات در میان تمام مسیحیان است میخوایم برسیم به ریشه‌ای کاری که حالا تو این اخیرا انجام گرفته این بازی آدمی است یک جوان آمریکایی که خدمت رسیده به او گفتم چرا مسیحیت را تک میخوایی تک بکنیم چون داشت تحقیق میکرد گفت بیشتر جواران مسی در آمریکا از سمیم دل به مسیحیت ایمان ندارن حق هم دارن مخصوصا آنان که دارای اطلاعات و معلومات عالی هستند زیرا آنان در مسیحیت مراسم دینی بیمغزی مشاهده میکنند واقعش هم همینجوره شما یک نماز اسلامی را باید به نظر قرار بده یک دانشگاه دار بیاتی، یک دانشگاه بعد یک دون از مراسم مسیاد به نام اشا ربانی رو تو خوشبختانه همه فرقای مسیاد انجام میدن اینا هم بررسی کنید خیلی ساده است تا امق و عظمت و مغز این تعلیم رو در برابر سطحی بودن و بسیار بی‌معنا بودن یک تعلیم به نام اشا ربانی شما دریافتش بکنید میگه اونجا یه سری تعالیم اینجور من میدیدم و میبینند که بعضی از بزرگان و رجال مذهبی از خوبی بهره این ندارند نه از خوبی بهره این ندارند داستان سفر پاپ رو ما به انگلستان همین سنوزه اخیر شاهدش بودیم دیگه انگلیسی های مسیحی چطور زیبا از پاپ استقبال کردند و چه اعتراضات عجیب غریبی که حالا یک نوبت هم در این باره سخن خواهیم گفت خیال نکنیم یک جامعه ایسپاک و هیچی توش نمیگذره و همه آدم های خوبی هن. نه بابا از بالا تا پایین با کار قرابه از بالا تا پایینش خرابه. بعد دکتهی که اینجا هست تا همین کتاب باز بحثی مطرح می شود تهدین عنوان که اسلام چگونه معرفی می شود باز که با این بزرگوار ملاقات کرده عین همین باراتو می گه ما هرچی در عمرمون از اسلام شریدیم از بزرگترامون همش راجع به اسلام بد بیرا بوده و ما رو دشمن اسلام بارا بردن هستن و این آدم دیگر که هر سرمی کتاب فقط در مورد ایشونه این فرد عرب است که مسیحی بوده مسلمان شده و نام علی از شیخ رو برای خودش انتخاب کرده نام قدس حضرت امیر المومنین رو و در باره قرآن این عبارات رو اومی که حالا کس که قرآن رو گم کرده بوده و حالا پیدا کرده پیش از این نیز گفته شد که مسیحیان قرآن را کتابی انسانی و غیر وحیانی میدانند میگن مال خدا نیستش خیلی خود پیغمبر خودش ساخته آنها پیانبر اکرم را بنوان فرستاده خدا نمیپذیرند بنابراین دوری گزیدن ایشان از قرآن عمری طبیعی به شمار می آید. در این فرصت برانم که به زکس برخی ویژگی ها و جنبه های اعجاز قرآن کریم به و داستان مسیح و مریم سلام الله علیه ما را از دید قرآن بازو کنم در اولین برخورد با قرآن گستردگی و شمول آن به چشمی آید این کتاب آسمانی در بردارنده معارف الهی و اخلاق و احکام و اخبار غیبی و داستان و ضرب المسل و پند و موعزه و بسیارت دیگر می باشد گستردگی قرآن با عمق نیز امراه قرآن به عطرهای مختلف داره حتی یک دونه آیه قرآن هفتا تا بطن داره بطن اول دوم سوم حالا وقت کنیم براتون همین رو خواهیم گفتیم کتاب چه کتابی هستن در قیاس با انجیل در قیاس با انجیل تا جایی که برخی از معارف عمیق قرآنی تا قرنها پس از نزول آن کشک نشده باقی من و چه بساک آیندگان بسیار بیشتر از آنچه که امروز از آن میابین بفهمند آینده ها باید بیان و عظمت آیات قرآن رو اونها در یابند. این یک سری مدد در مورد افرادی که مسلمون شدن خب اسلام نه تبلیغات حسابی داره نه تشکیلات خیلی منظم داره اینا رو نداره تنها سرمایهی که اسلام داره یک کتاب به نام قرآنه اینو شما خیال میکنید در سال چقدر گروه های تبشیری مسیحیت گروه های تبشیری مسیحیت یعنی امدتن مسیحیان پروتستان برای تبلیغات مسیحیت خرج میکنند همینجا هم براتون بگیم هر کس هم که منکرشه کاری نداره اقامه و ارائه دلیل بسیار آسان خواهد بود که ما به شما عرض بکنیم برنامه های مسیحیت در کشفرهای اسلامی به طور عقص بحث دین و آین و مذهب و عرف ها مطلقا نیست مطلقا یعنی آنانی که میان برای تبلیغات به عنوان مبلغ به عنوان مبشر که پول‌های گذاب براشون خرج میشه بعد در اون کشور اسلامی بودجای عظیم برای آن صرف میکنن اینها عمدتان کارهای جاسوسی انجام میدن اینو شما در مغز داشته باشید کار معصیت کار دینی نیستش کار دینی روبنای کاره کار دینی عبارت هست از مسئله سطحی قضیه عمق مطلب دیگری است بعد از پیروزی انقلاب تو همین مملکت خودمون در جاهای مختلفی که اینا کلیسا داشتن وقتی به دست انقلابی اون افتاد مدارک اون وقت قیل چه روشن شد که چرا مسیحیت میاد توی شهری به نام گروه که بین حمدان و سنندج قرار گرفته که یه بخشی بیشتر نیست حالا شده شهر چرا اونجا کلیسا درست میک چرا اونجا بیمارستان مسیحی درست میکنه؟ چرا از قلب انگلستان جراح میاره برای یه همشینی جایی؟ طرقی که در لندن مطب داره میاد توی قروه اونجا توی بیمارستان برای خاطر مسلمان‌ها کار میکنه. اصلا این حرفا نیست. بحث بحث دیگری است. اینا تمام بر یک مبنا میچرخه و بر یک مبنا است دوباره. مسیحیت با همه خرجی که داره میکنه و با همه تلاشی که داره میکنه از اسلام میترسه این تا کاره اینا نمونه های برتون گفتیم افرادی که رفتن خودشون با برخورد با که بسلمون دیگری با برخورد با قرآن کریم اومدن مسلمان شدن و اسلام هیچ بر اینا خرج نکرده که مسلمون بشن شما کشور به نام اندونزی رو در دنیا میبینید 97% در مردم این کشور مسلمونن بگید ببینیم از کجای شدن. جنگی باقی شده لشکری اسلام اعظام کرده هیچ اینا نبوده چی شد که این جمعیت عظیم بیش از تا دستی چل ملون جمعیت داره اونجا چطور شد اینا مسلمون شدن دو نفر سه نفر تاجر که اینا مسافرت به این طرف اون طرف به خاطر اقتصاد میکردن اینا در اندونزی و جزایر اونجا رفت و آمد داشتن این دو سه نفر اسلام اونجا پخشش کردن همین و همین نه پولی، نه بوجهی، هیچیچ هرچه هست بر مبنای این کتاب خوابیده که هدن للمتقینه هرکس بخواد راه پیده کنه بهش را نشون میده از علم هم نمیترسه، هیچیچیچ مسید با علم کلن بیگان است، اصلا بیگان است هر وای زده علم و زده عقل هر دوشو داره این کتاب عین علم از عین عقل است و هر انسان آزادی وقتی کتاب میخونه بدون فشارای جانبی در این تردید ندارم خواهد پزیرو و همطورم شده و پزیر این همه آدم گفتم من نمونه براتون آوردم بخوام بیارم کتاب کتابای عظیم اینقدر دارم براتون بیارم از کسانی که مسلمون شدن از مسیحیان البته و حتی خودشون کتاب نمیشتن علیه مسیحیت نقد مسیحیت البته کتاب نوشتن اینها و تعریف از قران کردن خب اینها برای دنیای مسیت غیر قابل تحمله. این نکتر داشته باشه اینجاش یهودی هم که دیگه از بعد به پیدایش اسلام خود قرآن به مردم مشتار بده با مسلمونا ولتجدن نعشد در ناس اداوتن للدین آمن و یهود در میان مردمان و گروه های مختلف شدید ترین دشمنان مسلمونا یهودی ها هستن اول یهودی ها بعد ولدین اشراکو مشتکین بعدن یهود از اول کمر به قتل این دین بسته جهتشب خیلی روشنه یهودی ها اصلا ادعاشون اینه میگن ما نجاده برگزیده خداییم این عین تورات ها این توراته دیگران غریبا هستن ما بچه های خدا هستیم اینا رو همه رو تورات میگه به اینا لذا همه دنیا رو خدا به خاطر ما خلق کرده, کرده. خیلی خوب خب پس بعد دنیا رو بگیریمش اذا این شعار صهیونیستا که حدود و کمل فرات الی نیل یه حرف خیلی بچگانه‌ایه است که آنچه بین فرات و نیل قرار گرفته بعد اسرائیل بگیرتش نه آریل شارون یه جمله‌ای گفت گفت ما سرحداتمون تا اونجایی که سرباز اسرائیلی بتونه بره هر جا بتونه بره اونجا سرحدات ماست دنیا بالا ماز خلاص اش اینا دعواشون باشن با هم دیگه کنار اینم یه داستان عجیب داره که حالا جای طرحش نیست که چطور یهودیا و مسیحیا که با همدیگه دشمن خونی بودن حالا با هم خوب شدن چی شد اصلا چه اتفاقی رخ داده که حالا با همدیگه خوب شدن گذاشتن کنار علتشم این است خودشون دارن نگنی رو که ما با یک دشمن قوی به نام اسلام طرف هستیم که خطر برای هر دومون هستش از دست به دست هم بدهیم تا اینکه چه بکنیم؟ او دشمن رو نابود بکنیم موج اسلام خواهی که در دنیا بلند شده امروز علا رقم ظاهری که ما در دنیای فعلی داریم میبینیم موج توجه به قرآن مقدس که در دنیا این موج ایجاد شده به هراس انداخته به وحشت انداخته خب چی باید بشه حالا؟ چینه ها و دشمنی های خودمون رو در قالب های مختلف باد عرضه بکنیم با و همینجا هم به شما بگویم اگر مسیحیان ایران اگر ارمنی های ایران به تعبیلی که قومی باشند اینا بخوان علی اقدام اخیر کن کشیش دیوانی آمریکایی یا مزنور آمریکایی انجام داد بخوان موزگیری کنن اینا به خاطر ترس خودشونه و نه در مغز اینها در کلیسه ها آنشنان فرو میکنن تخمت های علیه اسلام رو که اینا خودشون که سر نباهاشون هم به قرآن خوب نمیشن نباهاشون اینا فقط بحشتشونه الان در این مملکت ما و در کشورهای دیگر افرادی که خلاصه اینها قسم خورده بودن به آنچه معتقد بودن که با قرآن دشمنی بکنند این مطمئن حالا نیست که من یک کتاب در منظرم همین الان دارم مال بیش از ست سال پیشه ست سال پیش خواستید براتون تون نامشم بگم اسم کتابشو یک نفر کشیش آلبانی رفته زبان عربی ها دیارفته به نام فندر و بعد هم این کشیش فندر آمده و شروع کرده به کویدن قرآن کری به بدترین الفاظ به پیغمبر حد از دهنش در اومده گفته تو این کتابش حرف تازه ای نیست ینابی الاسلام بالا 80 سال بیشه مسیحی ها نوشتن علایه ما علایه قرآن ما نوشتن همین اخیرن شخصی به نام نورمان گایسلر که من کتاب شده رم این آدم علایه قرآن کتاب نوشته رفع اتهام اسم کتابش هم رفع اتحامه یا همچیزی به زبان فارسی هم مثلا یا او به آلمانی نوشته و ترجمه کردن یا خودش به فارسی نوشته سد صفحه قرآن میکوبه در جرسات بحثی که شما میرید با مسیحا میکنید اگر نترسند که براشون مشکل درست نشه از مسیر سیاسی حد دهنشون هرچی در بید وجب قرآن میگن اینا کی به قرآن احترام میذارن. نیگند حتی در ذهن بچه های تازه کار که تعد تبلیغ اینا قرار میگرند در کلیسا ها و جای دیگر چه کلیس های خانگی و چه کلیس های عموی همه این اربای ضد قرآن گفته میشه اونجا با افراد که میشینی میگه حالا به قرآن اعتراض دارم اعتراض دارم به قرآن خب خوب بگو حالا این خودش اصلا برادر قرآن رو ار رو بخونه معلومه از کجا گرفته اینا رو تعلیمات کلیسا ضمنی این که می‌خواد ترویج مسیحیت کنه ضمنو می چیکار میکنه میاد اسلام زدایی میکنه میاد با قرآن طرفیت میکنه من عمل خود بنده دیدم در طول عمرم رو این جد حالا آیا باقی تبلیغات مسیحی در کشورهای اسلامی در کلیتش اینا برای این است که مسلمان ها را مسیحی بکنن نه این اصلا این نیزدش ریشه این تبلیغات به جای دیگری برمی کرده اسلامو دارن نگاه میکنن به این قدرت داره میره جلو مادامی که مسلمانان به این آین بابستند مادامی که مسلمانان تبعیت از قرآن میکنن و این کتاب عظیم خدا این خطر وجود داره. چیکار کنیم که بتونیم در وحله اول منافعه یهود رو منافع یهود رو که دشمن در این دشمن انسانیته نه فقط اسلام در دنیا تامین بکنیم که مسیحیت در این ارتباط دقیقا به عنوان مرکب و اسب یهودیا داره عمل میکنه دقیقا اول این کارمون اینه با زیاد کردن و فراوانتر کردن تبلیغات علیه اسلام در کشار اسلامی جوانان مسلمان رو از ایمان اسلامی توی بکنیم ما اصل برامون همینه بی تفاوت کردنه مسیح شدن شدن نشدن نشدن او مهم نیست خب اینم نمیگیره با این همه خرج و با این همه کار و تبلیغات همینم نگرفتش خب یه رفی یک یازه درست میشه یازه سپتام یک محمل خیلی خوبی میشه یازه سپتام رو کیا کردن؟ آینده کشف خواهد شد که کیا کردن؟ به نام مسلمونا به نام القاده تموم شد خیلی خوب القاده مسلمونا رادیکالن خیلی خوب باشه کتاب مورد اعتقادشون قرآنه آه. ما به خاطر بزرگ داشته مراسم یازه سپتام ظاهر ماجره اینه. کتابی رو که به مسلمونا یه همچین ایده هایی رو داده که برج های دوگانه دورور خرابش بکنند و منفجرش بکنند این کتاب در داخل آتش بسوزانیم خب با این عمل چی رو بخوان بگن؟ من به شما عرض بکنم دشمنی پایان ناپذیر بین یهودیت و مسیحیت از یک سو و بین اسلام رو البته ما اینجور نیستیم دین ما به ما اجازه این نوکارا را اصلا نمیده ما عیسی مسیح رو قبولش داریم حضرت مریم رو قبول داریم قران در این زمینه سخن ها دارد اگرم قرآن به نقد می نشیند نه نقد مسیحیت اصلی رو میکنه نقد مسیحیت فعلی رو میکنه نقد اموری که عیسی مسیح نیاورده به نام عیسی مسیح فعلا دارن به خورد مردم میدن و عمدشام کار پولوسه قرآن نقد این حرفا رو میکنه قرآن خرط‌ها رو به تکان داره میاره و یعنی به عیسی مسیح نهایت اهتराब رو قرآن میگذاره و حضرت موسی کلیم پیغمبر بزرگ خدا بحث یهود و حضرت موسی دو بحث اصلا با هم دیگه این داستانا هستش ما اجازه ندارییم هم کارایی بکنیم به اعتبار اینکه ما مسلمانی اما اولو مذهب به خاطر اینکه نشون بده عمق نفرتش رو از این آیینی که هر روز داره در دنیا جلوتر میره هر روز داره تعداد فراوانتری را به طرف خود جذب و جلب میکنه مخصوصا از میان مسیحیان و تعلیمات بی محتوى و بی مغز اینها و حرفای که اصلا هیچ عقلی قبول نمیکنه. مردم فرار میکنن نمیان قبول نمیکنن کنن این آین به سادگی خودش به بسادت خودش به صفای خودش به احترام نهادن این آین بر انسان در کلیتش خب جاذبه جالبه مردم یه قبولش میکنن دیگه رو این جهته عمق نفرت این مجموعهی که عرض کردیم ولو سطحش و ظاهرش بحث 11 سپتامبر اما واقع مطلب این نیست این کینه ی دیرینه ایست که دو دشمن قسم خورده ی آین ما داشتن نسبت به اسلام حالا هم دارن تا زمان ظهور مهدی علیه السلام هم خواهند داشت جنگی در پیش داریم جنگی اعتقاده جنگی ایدئولوژیه و ما البته ارز کردم این کار رو نمی چون ما به ایسا مسیح اعتقاد داریم ما انجیل سوزونی نمی کنیم. نه ما نقد می کنیم. ولی قضیه در یک کلیتش این است چینه های انباشده در درون سینه ها به خاطر عظمت این کتاب به خاطر عظمت اسلام به خاطر عظمت قرآن کریم یک زمان تظاهر و تجلی میکنه به شکل سوزندن کتابی که نامش قرآنه خب چه خواهد شدید چی؟ شاید این ضربهی ای که به این ترتیب زده شد باعث بیداری خیلی مسلمانهایی هایی به خواب رفته بشه بدانن دشمنان دارن چگونه اندیشه میکنن اگر زمانی بر شما تسلط بیابند همون طور که قرانتون رو سوزوندن خودتون رو هم سوزانید. جنگ‌های صلیبی یادمون نرفته ما تاریخ زیبا بیانش میکنه که با مسلمان‌ها چه نوع معامله کردن مسیحیان چقدر کشتن چقدر تجاوز کردن و چیکارای دیگه‌ای که نکردن در داستان آن آندلوس با مسلمان‌ها چیکار کردن ایندا اینایی هم همونا هستن فرقی نمی‌کنه نقش ریزال و تررهان همونا هستن دیگه حالا دارن نشون میدن اوجه غضبشون رو اوجه نفرتشون رو اوجه اوج کیناشون رو نسبت به کتابی که تنها کتاب دست دستخورده خداست که در مرتبه در میره لذا خودمون باید آماده کنیم برای روزهای دیگری روزهای بسیار بسیار درگیرانه دیگری انشالله جامعه اسلامی هوشیارتر بیدارتر این تبلیغاتی هم که داره انجام میگیره عرض کردم این تبلیغات با کمک دیگران انجام میگیره این جوانهای بی پناه بی دفاع ما رو و بی اطلاع ما رو در داخل کلیسا ها می و میبرند و بعد هم بلای به سرشون میارن که هم دنیاشون رو خراب میکنند هم آخرتشون هر دو خراب میکنند امیدواریم که خدای مطالب همه ما توفیق یافتن این تأهد را در برابر این کتابی که تجلی خود خداست که از بهترین توصیفاتی برای قرآن مقدس بیتونی میکنیم امینه تجلی خود خداست ان الله ح تقالا تجل و چلامه ای. کلام چلام خود خداست حالا پیغمبرم نیستین. پیغمبر بر این نمیمونه نایی در او دمید است پیغمبرم تحویلش میده. کتاب کتاب خداست و برا خودش دفاع بکنه منتها. و برخ از دوستان ارجمند ما که خیلی از این قضیه در هم رفته بودن گفتیم به خود حوصله کنیم. خدا متعال مطالمهلت میده البته مالت. لطفش مهرش عطوفت خدای متعال به همه بندگان ولو بندگانی که قرآنشو می سوزنند شد برگردند اما نشد اون وقت دست قذب و انتقام الهی برون خواهد آمد و آنانی که به این کار ناشایس اقدام و قیام کردن خدای متعال به اشدد عذاب تو همین دنیا تو همین دنیا گرفتارشون خواهد کرد انشالله قسمت اول صحبت ما تمام شده و ایه یا ربی فرصت داریم برای پذیرایی زارم استی برای بیرون در بیرون پذیرایی میشه تش برای یک لابی تر بکنی یا عرض کنم حضورتون که تغییر زاویه بدید و بعدم سوالات بینتون ان شاءالله کاو پخش میشه و اگر سوال داشته باشین بفرمایید اگر هم خواستیم که حرف بزنین که شفایی بنده آمادام ان شاءالله صحبتات رو خاطید کرد و ما هم در حد وقتمون ان شاءالله پاسخ خواهیم داد امیدواریم خدای متعال ان فرج مهدیار الاسلام رو هر چه زودتر برساند و دنیای ما را به نور جمال این بزرجوار روشن کند ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات. آغازین ما هم هست یک مقدار اگر ناهماهنگی مشاهده شد من همینجا از طرف خودم و دوستانم عذرخواهی می‌کنم و جای که هرچی خیخ مقدم بگم خدمت سهروران و عزیزانی که تشریف فرما شدن تا از مبایث استاد هرجمندمون جنابای دکتر فریدونی استفاده بکنن و از اونجایی که مبایث ایشون تقریبا برای این جلسه به اطمام رسیده الان نوبت رسیده به بحث پرستش و پاسخت هم اینجا دوستان میتونن به صورت شفاهی سوال خودشون رو مطرح بفرمایند و جواب رو از جنابای دکتر دریافت بکنند و کاغذهایی هم که خدمت دوستان ارائه شده میتوانند به صورت مکتوب بنویسند به دوستان ما بدن ان میان از شما جمع میکنن تا پرسش هایی که نزد آی دکتر میاد ایشون به تنوع و پاسخگو باشن فقط یک بحثی هم من از سروران درخواست میکنم که ان اینو انجام بدن شماره های همراهتون رو پون برگه که خدمتتون دادیم یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله بقیه آتی ما بتونیم بهتر اطلاع رسانی بکنیم و از طریق سامانه پیامک بتونیم در واقعه جلسات و ساعتش رو به شما ان اعلام بکنیم خب من دعوت می‌کنم از جناب دکتر استاد ارجمند جناب آقای فریدونی تشریف بیارن تا ان در بحث پرسش و پاسخ در خدمت ایشون باشیم به حق صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم مثل یه قرار بر این شد که اگر سوالاتی هست اول به صورت شفاهی و بعد هم اگر نبود کسانی که مرغومه ای میخوان مرغوم به فرمایند بنویسن که در فاصله زمانی که ما حده اکسر تا ساعت ده دقیقه به نو پنج دیگه به نو بیشتر خدمتون نیستیم فاسخ سوالات داده بشه حالا بین خواهران و برادران یک کسی سوال حضوری شفایی داره و عنوان بخونه که خودمو هم استفاده کرده باشیم. اگر هم نیست روی برگه ها بنویسین که دوستان ما جمع وری بکنند و فاسخ بدیم انشاءالله. بفرمی. با چرا. بخش با ترجب گفتاری که شما فرمین در دین مسیحیت و یهودیت من میخوام ببینم ما توی قرآن اشاره میشه که در مثلا در مورد دین مسیحیت اعلام شده که پیامبر بعدی میاد به نام احمد این بشارت بهشون داده شده با توجه به اون کسی هم که حضرت محمد رو تو بچگی شناخت یه همچین چیزی اینا دارن من میخوام اینا اینا اینا میبینن و بازم منکر شدن و اون چیزی که شما میفرمایید چون در واقع مثلا چیزایی که من خوندم اعلام میشه که قرآن اون چیزایی که ما تو قرآن داریم بیان می کنیم برای شما قبلا هم در کتاب های تورات و انجیل برای مردم اومده به جز مثلا دو تا سوره حمد و یاسین که این دو تا سوره مختص به پیامبر ما نازل شده این چیزی باید. که من اطلاع دارم من می خوام اینم یعنی با توجه با همه این چیزا اینا یک کامل انحراف پیدا کردن از اون بعد دارن اسلام و منکر میشن یا نه سه تا مطلبو در فرمای شما من دریافت کردم حتا با اون چه در قران کریب اومده ظاهران در ادیان پیشین که تجلیش تو این دو تا دین اخیری باشه یعنی دین یهود و دین حضرت عیسی مسیح آمده جز تو سوریه یاسین و سوریه هم که بیان کردید این مطلب اولتونه مطلب دوم این که اینها بشاراتی رو که در مورد رسول مکرم اسلام در کتابهاشون آمده است اینها رو میخونند و ایمان نمیآورند و کفر میورزند و یا اینکه که اصلا نمیخونند این هم مطلب دومی که هستش مطلب سبونتونم یادم رفت دارم ولی گوهر میکنم تا حالا اگر خاطر تنوب هستی محتب سبایی بگید که من زمین پاسخ ها بگم. راجب تورات و انجیلی که فعلا از تماه هست. یعنی این کتاب. بمینید کتاب مقدس خودشون. Holy, Holy Bible. All English. کتاب مقدس یک مجموعه ایست از دوت کتاب. یکی عهد عتیق یکی هم عهد جدیده. عهد عتیقش در برگیرنده ادعا میکنند. حرف خوی عزیزت موسی علیه السلامه که پنج سفر توراتی باشه. پیدایش و خروج و لاویان و اعداد و تصنیم. یه سرم کتاب اضافه شده بهش بنوان رساله هایی که منصوب پیغمبران بنی اسرائیلیسی یه البته. مثل سلیمان، مثل داود، مثل عزقیال، مثل دانیال، مثل هبقق نظیر اینا. یه سری نوشته هست که به افراد غیر پیغمبره ماله گذشته زمان موسخه البته در ابرز میکنم براتون مثل استر و نحمیا و نظیر اینا یه کتاب هم هست که برام کتاب عهد جدید معروفه این عهد جدید مراد شنین آنچه منصوب عذرت ایسا و مسیحه چه چار تا انجیله که همین مسیح قبولش دارند و یه سری کتاب های منزم به انجیل هست که امدتا مال پولس مسیحیان عالم بر این اعتقادم، بر این باورند که این کتاب در کلیتش کتاب الهی است. یعنی حتی یک نکته غیر الهی تو این کتاب وجود نداره هرچه هست اینو خدا تاییدش کرده. این بحث اونهاست. اما ما ها یه همچین اعتقادی نداریم. ما به تو پیغمبر معتقدیم کما این که به پیغمبری دیگه هم معتقدیم. اعتقاد ما به این پیغمبران بر اساس گفته خود قرآن کریمه یعنی ما حضرت موسی و حضرت عیسی علیه ما سلات و سلام رو دو تا پیغمبر بزرگ خدا میدونیم که تعبیر آمیانای پیغمبر علول عزب دیگه این. دو پیغمبر بزرگ خدا میدونیم و میدونیم که دو تا کتاب این رو اطلاف خدا آوردن یک کتاب به نام تورات تو آورده یکم به نام انجیل آورده اما آنچه الان به ما دارن تحویل میدن حضرات این همون کتاب هست اینو قبول نداریم ما. خلاصه ماجره اینه که این کتاب دست نخورده باقی نمونده و اینو قرآن سریح میگه و قبل از قرآن خود عقل آدم میگه مثلا فرصوید حالا من نمونه براتون بگم که خیلی خلاصه ما ادعای بدون دلیل نکرده باشیم در صفر تصنیهی تورات چون میگن تورات مال موسی دیگه یعنی مطالبی است که خداoverline موسی وحی کرده موسی هم برای مردم گفته در آخرین باب سفر تصنیه باب 33ه اونجا میگه موسی مرد خدا در سن 90 سالگی از دنیا رفت وقتی که مرد اینجوری بازش بود چشماش سووش کم نشده بود قدش مثلا خمیده نبود و وقتی که مرد بردن در فرنجا دفنش کردن میگیم این هروی کیه چون شما ادعا تورین که توراد یعنی سخنانی که حضرت موسا خدای گرفته ولی مردم گفته این را که حضرت موسا نگرفته که این داره خبر از مردر موسا میده بعد از مرگش میده این مردم دیگران مبرخی نوشته از این نمونات تو این کتاب فت و فراوونه فت و فراوونه هم در تورادش هم در انجیلش فرقی نمیکنه هم در عهد عتیقش هم در عهد جدیدش لذا او به اخته چرا؟ قرآن میگه ما تورات رو بر موسا نازل کردیم یه تورات رو خدا میگه من نازل کردم بر موسا یک انجیل هم بر ایسا مسیح حالا کو دیگه اونا بد ما عرضه بکنن که این تورات موساست این هم انجیل ایساست اینو رو نمیتونه این کارو رو تناقضات فراوانی که بین مندرجات همین کتاب هاست با هم دیگه نشوندنده این که اینا کتاب خدا نمیتونه باشه چون خدای موسا شیچور حرف نمیزنه. در یک زمینه خدا پنج جور حرف نمیزنه اینا رو ما کتاب آسمانی همشو قبول ندا البته معتقدیم که در این مجموعه حرف های خدا هم وجود داره اما همشو نه اینا دلیش میگم یا نه ما همشو قبول نداریم کتاب خدا باشه نه این بعد شما اثباتش بکنید بله البته نه همه قران چون من تو اونجام هر حرف دارم حالا نرسیدیم به اونجا فلان قسمت اولمون این بحثمون بوده که ما این کتاب رو در بحث کتاب خدا نمیدونیم این کل ماجراست برای ما هم دلیل داریم ما تو که معتقدی تمام این کتاب از اول تا آخرش چیز در حد دو هزار صفحه کتاب این کتاب در این حده همش حرف خداست تو باید دلیل بیاری من بر عدم اینکه کتاب خدا نیست همش دلیل دارم تاگی دل دور که حرف خداست ورد بیار این سخن ماست اما یک سری اصول و کلیات در همه ادیان بوده البته قطعا همینطوره یعنی شما فرض فرمایید که یک تاوی خدا جاودانگی روح بحث قیامت بحث معاد اینها که سی خوراکی های حرام شراب قطعا در همه ادیان حرام بوده در این دردید نیستش اما این که خب این مطلب در همه ادیان اومده حالا اگر در اینجین میخونیم ایسا مسیح به عنوان موجز شراب درست کرده معلومی حرف ایسا مسیح نیست اینو بهش بستن چون شراب حرام بوده به حاله آمزدش اما یه بحث اینجا مطرحه و اون بحث این است که ما معتقدیم آین مقدس ما کامل ترین آینهای آلمه اصلا ربطی به تورات و انجیل نداره. تورات انجیل فعلی من دارم باز عرض میکنم هم حرفام اینجاست. حالا فرض کنیم که این که تورات انجیل نه، تورات انجیل واقعی داشته باشیم. بازم قرآن به مراتب فراوانتر از اون کتابای اصلی هم هستش. چون قراره بیاد جامع قرآن حرف بزنه. و این کتابو هیچ کدومشون جامعه نیستن. لذا پیغمبران پیشین که اومدن همشون بشارت به آمدن پیغمبری دادن که وقتی میاد حرفش تمام هستن و کل قانون ها رو براتون میاره لذا این اعتقاد نداریم که هرچی در قرآن چریمه هست در تورات انجیر بوده سوای دوتا سوره این هم معتقد نیستیم ما ما معتقدیم که یک سری حرف ها رو قرآن مشترک داره با تورات انجیر اصلی یاد قدش داشته باشید ولی یک سری حرف هم خاص خود قرآن چریمه چون قرآن رو خدا فرسده برای همه زمان ها بعد تو همه‌ی زمان‌ها بتونه جوابگو باشه بنابر این اون محدودیتی که در این دوتا کتاب کتابه در قرآن کریم نیستش و اینکه فقط دو تا سوره باشه خاص قرآن این ما دلیل بعد لازم داشته باشیم که قبولش بکنیم این جور نیست بسیاری از مطالب قرآنی در این دوتا کتاب اصلیشم نبوده به خاطر اینکه به خاطر اینکه این کتاب اومده برای همیشه حکومت بکنه اینم مطلب دومه تو مطلب سوم این قضیه است که من حالا میخوام چش بخونم براتون مسیحیان یهودیان از این دو کتاب هیچ اطلاعی داررن هیچ هیچ مسیحی زاده است یا دو خواده مسی مثل مزمونان خودمونه درره ما مسلمونان خودون به مراده بهتر از اینها هستند هیچ نوع اطلاعات از این کتاب ندارن هرچ هم میگه غیر از و من رو امتحان کنم بر هم دو کلیسایی که مسیحی جماعت جمعیشون سوال کنم بگم جواب بدین من از کتاب خودم سوال میکنم اینا تو خانواده مسیحی به دنیا آمدن در واقع مسیحی زادن یا یهودی زادن مندرجات این کتاب مطلقا من حتی یک مسیحی رو نمیتونم پیدا کنم مسیحی معمولی دارم میگم که یک بار از اول تا اخری کتاب خونده باشه یک دفعه اتا اقلش یکیش پدکرین سلامانو بیش برسون نمیدونن این ها. خب به طریق اولا اون بشارت هایی که در مورد پیغمبر اکرم در این دو کتاب آمده اونا را بلد نیستن این مسیح های عادی معمولیه حساب مبلغین و کیشیش ها از مردم عادی جداست اونا برنامه های دیگری دارن به تعبیر خیلی راحت دار اونا معمولیت دارن او حرفشون فرق میکنه یعنی کلاس های عجیب براشون میذارن سیستمتیک منظم و اینها با اون معمولیت های خاصی خدمتون من قسمت اول گفتم وارد پرسه تبلیغ می شود اونها می دانند اما دنیاشون در اون مسیر نیست یه محمد رضای جاید الاسلام پیدا می که این یهودی بوده این اون متعالیات اسلامی در مسلمون شد حالا کتاب نوشته کتاب بسیار بسیار کتاب قشنگی به نام عنی اعلام داره ایشون رد بر تورات و انجیل یه یکیشون رو پیدا میشه که کشیش باشی یک هم در اسپان چند سال پیش مسلمان شد کش که کتاب هم نوشته اینا نادرند عمده ای اونایی که در کار تبلیغی هستن و گرنه الان پاپ بهنددیکتشون زهم واقعا اننجیر یوهنا رو بلد نیست انجره یوهنا رو نخونده خب در اننجین یوهاس سریب با آمده به همین انجیر فعلی ها نه اننجین دست نخورده که نیستش همین هست سریع با آمدن وجود مقدس پیغمبر اسلام بشارت داده شده پاپ بنیدیکت 16 سفر صفر تورات رو نخونده از قول حضرت موسیٰ علیه السلام که سریع بشارت با آمدن پیغمبر اسلامه اینو بلد نیست؟ و بلده خب آقایش نمیزره خب بلن چی بیر رها کنه چون اگر بخواد قبول کنه باید بگیر همه حرفای ما بیخوده دیگه پست و مقام و منصب پاپی و کات... کاتولیک و فلان و پردستان همه رو باید بادهش رو بخونید باید این کار رو بخونه دیگه و این مشکله نظام مسئله مسیحیان عادی معمولی رو از اون قادرهایی که اینها یه برنامه های قاس دارن و معمولیت های قاس دارن شما جدا بفر بایید نمیدونم پاسخ سالاتون داده شده نشده چیزی مانده بگید حالسه چرا اومده دیگه گفتم بهتون بله محمدرضای جاوید الاسلام کتاب انیس اللاله کشیش کردن اسمش آدم رفته مال اصفهان کتاب نوشته ایشون برگشته چرا پیدا میشه توشون آدمای سلامت و آدمای اندیش پیدا میشه تو اینا این هم براتون خوندم اینا کیا هستن این آدمی که ای کتاب اینجوری نوشته حتما با مطالع نوشته این کتابا نه اینجور نیست که نباشه توشون این یه بحثه اشتباه نکنی شما هرگز ما با سنیا در مورد قرآن هرگز اختلاق نداریم هرگز مسلمانان آلم یک میلیارد و شیستد میلیون نفر همه به این کتاب معتقدن این کتاب را عبود دارنش وضع ما با سنیا با وضع مسیحان با همدیگه کلن و از ریشه با هم دیگه فرق میکنن ما بعد از پیغمبر اکرم بحث خلافت و جانشینی داریم که مطرحش هم میکنیم در کتاب اون مطرح شده اونا مرپاشون رو زدن البته در مورد قرآن با هم دیگه هیچ اختلاف نداری یعنی همین قرانی که الان روی میزه مرن اینجا هست همین قرآن عیناً توی عربستان سرودیه همین قرآن عیناً توی پاکستان که مرکز وهابیاست همین قرآن توی زادانه که خیلی حنفی اون تو هست همین قرآن توی سرندج خودون که شافعی یا برابونن هیچ فرقی با هم دیگه نداره تو واوی ما با اونا در این مورد اصلاً اختلاف نداریم. کدوم مسلمونه میگه این قرآن کم و زیاد شده کدوم مسلمونه میگه تحریف شده یه آیه اینجوری شده اونجوری بوده مثلا کدوم مسلمانی میگه مثلا این کتاب یه واوش کم شده باشه مثال دارم میگم هیچ کس و از ما به عنوان اختلاف و اختلافات اون بعد از پیغمبر اکرم با همدیگه است در اصول با همدیگه اصلا اختلاف نداریم این غیر مسیحیته کاتولیک پروتستان ارتدوکس در اصول با هم اختلاف دار اصول حتی شما مسیهیون برام یونیتاریسم داری یونی... البته بهدار بگی مکتب یونیتاریسم درس عین مسلمانان معتقد به توحیدن در اونا تصیص رو میگن ول با تش خونده در اصل با هم دا اختلاف دارم. ما هرگز با مسلمان های عالم در مورد قرآ هیچ اختلافی نداریم هیچ هیچ, هیچ. همینه که از اینجا اونجا آمد. نه یه داره نذنی به همین شکل قیافه هم هستش. یعنی اولش یواامکن سر هم ده آخر سروری و نسه صد چه سروری به همین تی باوی هم قرار گرفته. روی این جد هیچ اختلاف با اینا تو این مورد نداریم. اختلافات ماله من حرفایی بعد از پیغمبر اکرمه ربطه هم به قرآن نداره اما اینا اینجور نیست قضیه شد فهمتون که برتون ارز کردم در مسیحت اساسا یکی مشکلات بزرگی که در برابر مسیحیان قرار دادن عدم تفکر و اندیش است اتباعا دلیل حقانیت این آین و بطلان او آینه خدای مطال فکر داده که من اندیشه کنم من در مسیر انتخابم باید بررسی و تحقیق بکنم این حق منه چیزی که خدا به من داده اینا میگن تعتیل تعتیل تعتیل تشریش میخواد بدونی بعد بیای ایمان بیاری قبول کنی بعد بد روشن خواهد شده حواله به آینده خواهند میخواد مسئله فدار را بشه که مسئله عمده مسییته ایمان بیار بعدن روشن میشه اشعار روانی مخالف عقلاته بیا ایمان بیار درست میشه همش حواله به آینده است ما میگیم نه قران میگه اول تحقیق بعد برو قبول بکنه. حالا، در این مسیر ممکنه شما اشتباه بکنید، باشه بکنید ولی راه رو باید درست ای بکنید یعنی اونطور که خدای متعال به سرمایه داده راه رو هموجود ای باید بکنید شما سرمایه اد به بذار وسط کتاب رو هم بذار مقابلت به خونش از راهنمایی نمایی راه که خدا بهت معرفی کرده استفاده بکنه خدا معرفی کرده بهتون نه فلان امام پدر روحانی فلان کشیش فلان پاپ فلان کاردینال فلان اسخفو نمیخوام بگم فلان اخوندو نمیخوام بگم خدا به تو راهنما رو نشون داده اونا کیان ائمه علیهم السلام و شخص پیغمبر ممکنه تو ایراد گرفتاری اشتباه بشی ولی شما معذب نخواهی بود چون وظیفتو انجام دادی ممکنه به غلط بیفتی باشی بیفتی خدا میگه من دست تو میگیرم خودم دست اون وقت میگیرم که در مسیر قبول حق تو چی تو رویی که باید رفتی اینجا کوتاهی نکردی یه وقتم خاصی لغزش بده کنی من خودم نجاتت میدم خود خدا میگه این رو اینا با بعض شما ما خیلی فخر میکنه ما میگیم تعقل و اندیشه اینا میگن تعقل و اندیشه باطل تعطیل هستند تعطیل چی میگی برو هر جایی هر عالم تو هر کلیسایی که من رفتم البته برو تو سر این سوالا ما مطرحه کردن اینا ما جواب ندیم نظر نیست اینا عقلانی نیست اصلا عقل در این هیترایی نیست اصلا این حرفو رو حالا ان که ما میگیم عقل یک شاخصی که خدا برای ما قرار داده. لذا هرگز ما اختلافات دیگه با سنی و وهابیا ها حتی داشته باشیم با اختلافات که اینا به خودشون بخخودن اصلا با هم دیگه قابل تطبیق نیست، یکسان نیست به هر حال. حق خدای مطال عرضه کرده بر خود خداست. تو قرآن آیه است ان علینا للهدى. خدا خودش میگه. ما باید هدایت بکنیم. یعنی رو بتو نشون میدیم. خودت بدونی حالا دیگه. ما هم که خلقت کردیم سر خود رهات نکردیم چون خلقت ما بر اساس قاضی لطف بوده نمیشه من انسان رو بیافرینم او رو سر خود رها بکن اصلا نمیشه از لطف و عنایت حضرت حق به دور از این قضیه توجه فرمودید میگم بورو این راته میخوای بورو حال نمیخوای بریم آزادی خود دیگه اون وقت اینو ما در اسلام گفتان مثلا هرجوری میخوای تحقیقونو بورو بکن بورو تحقیق بکن مسلمان باید در مورد همه امور تحقیق بکنه بعد برای خیرهایی قبول بکنم آخرش هم همه جا میرسه که اول بودش ولی تحقیق اثارت خود چه داره مسیحت اینجوری نیست یهودت اینجور نیست پیروان بودا اینجوری نیست اونه که حال ما باشون برخوردهای فراون داشتیم زردوشتی ها مطلقا اینجور نیستن اصلا تنها اینی که میگه این اقلت فکرت اندیشت به کار بگیری اینه مقدس خودم که خیلی هم غریب خیلی غریب تحلیه خودتانو در مورد نظر دوتر سروش در مورد اینکه خداوند معانی را به قلب پیغمبر و پیانبر کلمات قرآنی خود گفته است و یا فرمایی داری اولا ایشون این نیست اصلا واسه بس, بس معانی و الفاظ نداره اصلا ایشون در نهایت کمال فکری و اندیشه و اندیشهی خودش به اینجا میرسه که اصلا قرآن مفاهیم و معانیش هم جوشش وجود شخص پیغمبر اکسمه اصلا اصلا برس کلمات و الفاظ و معانی و اصلا یه حرفانی داریه کلیتش اینه این یک آهنگساز چطور بشه آهنگ الهام می شود اصلا بحث خدای خدایی نیست حالا برای که این بسنده رو درستش بکنه 500 جور دیگه حالا برامون توجیه بکنه توجیهات هم توجیهات بسیار آبکی البته چون سروش رو من می شنسم سوابق و آشناس هم با خود شم بودم من بزرگترین مشکلی که در این آدم هست مشکل خودخواهیشه و این بزرگترین دشمن هر آدمیه که فکر کنه هیچ کسی چی بلد نیست هر جهاز من این خلاف دستور اسلامی هر جا علم نافعی یافتی زانو بزن یاد بگیر ایشون اینجوری قضیهش و مناظراتش و همیشهش خبر دارم احرالتی اصلا صحبت او این نیست صحبت او این است در نهایت کمال اقلانی کهشون پیدا کردن که این ایک آهنگساز که ایک آهنگ به او الهام می شود نه طرف خدا در واقع پر جوش شد درون پرجوش او هست که آهنگ رو ایجاد می کنه همینطور هم قرآن جوشش وجود شخص پیغمبره خدا بی خداست هست فرن حرفش اینه و خیلی عجیب هستیشون حالا که در این می آن می گه من اطلاعاتم در قرآن خیلی زیاده و واقعاً قرآن واقعا بلد نیست از این مطبع تا عجب نکنید هیچ تا عجب نکنید ایچ ایچ. کسی قرآن بلد باشه حالا های همه امور دیگر کسی قرآن کریم بلد باشه آیات و وقتی میخونه حواس چه هم میشه ما اکونو لی ان ابدلهو من تلقا نفسی این اتبو الا ما یوغا علیه یعنی چی هستن من اصلا نمیرسه که حتی یک دونه لغت قرانی رو بکنم من منتظر وحی خدا هستم در درو پیغمبر بوده اون وقت ان اتبو الا ما يوها الیه منتظرم خدا چی میگه همون کارو بکنه سوره الحاقه رو بگیرید بخونید ولو تقبلوا علی نابع از رقابیل لا اخذنا منه بالیمین ثم پیغمبر جرأت کنه این خدا داره تهدید میکنه پیغمبر جرأت کنه یک دونه کلمه بر ما ببندام از خودش ببنده ما اینجاشو میگیریم میکشیمش و پیغمبر از خودش جوشیده قران پیغمبر حرفای دیگه هم داره نحوه فصاحه رو نگاه کن هیچ جا پیغمبر در نحوه فصاحه اش نکرده که کی میتونه مسی حرفا بردار بیاره اما تو قرانش این کارو میکنه وقتی نحوه فصاحه رو بغل قران بذارید اختلاف این دو با هم دیگه تمل نوزارده چرا؟ چون در قرآن الفاظم مال خداست معانی هم مال خداست اما در کلمات پیغمبر معانی مال خداست الفاظ مال شخص پیغمبره تازه در کلمات خدو هم معانی الغایی خداست دازه اشون اصلا منکر همه همین الفاظ با خیلی راحت شد شده است که این کار یعنی چی؟ ایجاده بی احتمال به قرآن اس شیطان پراست مگر اون کشیش که این کار کرد گفتم من دوراستم مگر که روش ادعا که من کشیشم من سیا هستم که سی همه ما معتقدیم که اکیا کلیسا نه همه ما معتقد نیستیم شما معتقدی ما حالا نترسین نه تا رفت آبرفتان مکانیست برای عبادت و برای حضرت ایساست. بچه را کشیش ها و مسیحان معتقدان که چی؟ پولوس، پتروس، سنگیست که کلیسا روشی کرده. با آن نهاده شدم هم چیزی دیده؟ بی خود معتقدان نیچ. کلیسای محلیست که در واقع شاخص محل عبادت مسیحیانه، حضرت ایسا مسیح هم همچین کلمه رو اصلاً به کار نبورده اصلاً از کلمهات ایسا مسیح هرگز شما این کلمه ای کلیسا رو امتیم شیمه برای درست شده برام ایسا مسیح علیه السلام دیگران درست کردنش از محل عبادت هم نیست واقعاً کلیسا کلیسایی که میخواد اونجا برای ما این مطلب رو القا کنه این مطلبی که خلاف عقله خلاف فطرت است و خلاف تمام یاف میخواد القا کنه که عیسی مسیح خود خداست که اوماده اونجا اسمش دیگه محله عبادات نیست اونجا بتکده است عیسی مسیح کی خدا بود آخه عقلتون کجا رفت شما عیسی مسیح رو میگیرن به بالای دار میفرسنش همشون گفتن مدطا میگه لوقا میگه همشون گفتن اون بالا داره ناله میزنه که ایلی ایلی لما سبقتانی پدر خدایا خدایا چرا مرا به خودم باگذار کردی؟ داره با که حرف میزنه ایسا مسیح؟ تمام زور کلیسا اینه که بیاد ایسا مسیح رو به جه خدا بنشونه همین و همین الله بس کنار الله در قیافه و شکل و سیما و حیکل ایسا مسیح مجسم شده این عین حرف یوهن ناست اومد مددی تو بین بنده هاش خدای بدبخت در بین بنده ها بنده ها هم قدروش رو ندونستان گرفتن خدا رو به دار کشیدن اون چه خداییه اون وقت تازه بالای دارم داره میگه خدای من چرا به خودم با واگذار کردی داره با کی حرف میزنه اگر خود خدا هستش که دیگه خاندان خدای دیگر که معنا نداره که اگر خدا نیست پس چرا شما بم دارید می نویسید آها آه این اول انجیل کتاب عهد جدید یعنی انجیل مقدس خداوند و نجات دهنده ای ما عیسی مسیح خداوند من نجات داندیم ما یعنی بچه‌ قبول نمی‌کنی یارو برو لازم انسان جایی عبادت که خدای واقعی در اونجا عبادت بشه این کلمه الله اکبر اوه, اوه, اوه. یعنی چی معنیش الله اکبر اما یوسف هر چه بخوای واسپش کنی نه خای این خداست اینو باید خواندش اینو باید عبادت کرد کمال روی انسان زمان امکان بزیره که انسان با وجودی که قدرتش و رحمتش و عطوفتش و رحمش ورای تمام موجودات با او ارتباط برقرار بکنه یعنی ایسا مسیح کشیه بنده خداست بنده گرفتن دارش کشیدن با قول شما که چونی نه نمه برای عبادته مالی برای بودپرستیه بهتر بگیم ما. کسی رو بنوان ایسا مسیح بوتش کردن و مردم به طرف عبادت او میخانندش و پیغمبر ما میگه نما آنه بشر رو مثل کن ای بجرم شما یوهایلی تفاوت من با شما دارم که من با خدا ارتباط دارم همین و همین منو نپرستی لا تتقض قبری قبله او خو خو قبر منو با من قبلتو نگیریده وقتی لا تتقض و قبری مسجده داد میزنه من بنده شما هستم فرق من با شما ارتباط من با خداستی شما ندارید من دارم و نام میشه این پیغمبر بزرگوار عیسی اینجور حرف میزنه اون وقت اینا برایشان درست شدن یک خدای جای خدای واقعی بجای الله در قیامت که روز سختی است بسیار سختی است حسابرسی همگانی خدا عیسی مسیح محاکمه میشه از لا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس و امي الوهين من دون الله تو گفتی همه چه که در محشر هستن از ایسا مسیر سوال میشه تو گفتی ایسا مسیر که من و مادرم را به عنوان دوتو خدا بگیرید شما ماذا الله این سبحان الله من اقول مالهی سلی به حقین یا به علم من که هم شرفی زدم خدای تو خودت میدونی من همواره گفتم الله رو پرستید من بنده او هستم اینا بی خود به من بستن پولوس آمد مسیحت رو زیر روش کردش یه آدم یهودی خودش میگه من یهودی بودم مسیحا رو عذیت میکردم تعقیب میکردم زندان میکردم میکشتم ایسا مسیح رو هم ندید با این سابقش بعد مدعی میشه و که دلیگه مسافرتاش ایسا مسیح او مکاشفه انجام میداد میبینه ایسا مسیح رو یه دفعه برمیگرده گروه عابد شد پدری از مسیح در میاری که اون خیلی حرفا رو عیسی مسیح تو انجیل نمیگه و پولس میگویاد رضا در روایات اسلامی پولس به همراه یدی دیگر البته در آخرین مرتبه جهنم قرار داده شده از طرف ائمه ما مسیح تو زیر روش کچلوندش عیسی مسیح کی هستیس گفته کی فدا گفته عیسی مسیح به این شکلی گچون گفته اینا عملی داره میزنن در میان مسیح اون عنوان شخصیت دوم هستش ا درد در از مسیحیت تو این جهاد ان شاء الله حضرت مهدی علیه السلام که ظهور بکنه دعا کنی که زودتر بیاد دنیا رو به نور جمالش روشن بکنه حضرت عیسی مسیح میاد عیسی مسیح زنده است زنده است بی خود میگن کشتنش خدای متعال یهودای از خروجیه به شکلش در آورد اون گرفتن کشتنش عیسی مسیح زنده است وقتی ظهور بکنه ان شاء الله حضرت مهدی عیسی میاد خدا متعالم در یک نقطه از نقاط این مجموعی عظیم هستیش داره ایسا را نگر میداره زنده, زنده است. از همون زمانی که حضرهاب میگن گرفتن کشتنی زنده است. برمیگرده میاد پیسر امام زمان ما نماز بخونه ایشون در مکه حضرت مهدی که ظهور بکنه سر مهدی میسته و چکار بکنه و حضرت مهدی اختدا می کند و مسیحیان آلم میبینند که ایسا و مسیح به مهدی اقتدا میکنه، پُیش سرش نماز بخونه به مهدی ایمان میارن. دو تا گروه هست، یکی ایمان ایمان نمیاره، یهودیان. میمونن در لجاجت خودشون. یه سری سری سنیان که محبت خلیفه دوم چنان در قلبشون رفته که بیرون اومد نیستش. اونها ایمان نمیارن. میگه مردم بقیه مردم دنیا بهش ایمان میارن. حرفاشو میشنوند، تعالیمشو میبینند و کارهایی که انجام میدهت میبینند ان شاءالله.